یوسف گمگشته باز آید بکنان کنعان غم مخور کلبه یعزان شبد روزی گلستان غم مخور ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور گر بهار عمر باشد باز بر تخت چمن چتر گل در سر کشی ای مرغ خوشخان قم مخور دور گردون گرد دروزی بر مراد ما نرفت دائمان یک سان نباشد حال دوران غم مخور حان مشو و نومید چون واقف نی از سر قید با در پرده بازی های پنهان غم مخور ای دل از سیل فنا بنیاد هستی برکند چون تو را نو هست کشتیبان ز تووفان غم مخور در بیابان گر به شغل کعبه خویزت قدم سرزنش آ اگر کند خار مغیان غم مخور اگرچه منزل بس خطرناک است و مقصد بس بعید هیچ راهی نیست کن را نیست پایان قم مخور حال ما در فرقت جانان و ابرام رقیب جمله می خدای حال گردان قم مخور حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار تاب و بد وردت دعا و درس قرآن قمه خور حافظا در کنج فقر و خلبت شبهای تار تاب و بد وردت دعا و درس قرآن قمه خور